هر کسی که به روایات اعتقاد نداره میگه اینا مسند نیست این اینها فقط به قرآن اعتقاد داره برای این چطور میتونیم حجاب رو اثبات کنیم بعد ازش دوری کنید شما نمیتونید به اونم کنید اما در مورد حجاب اتفاقا دلیل عمده در قرآن هست آیات سریح حجاب در قرآن هست جزئیاتش رو توی آیات گفتن این یه مسئله اینطوریه بحث جلباب رو و اونجا داره جلابی ببهیم نه در قرآن گفته خب بنده خدا ظاهرا شبهات دیگه هم درباره این موضوع باید با یه احلی که وارد هست و بقوف داره صحبت کنه اون شبهاتش یا اون سوالاتش رو سوالات جوزیش رو برطرف کنه ولی اصل حجاب در قرآن ثابت شده است سریحه. ظهور نداره نسته ولی اینها این شخص از این فرد دوری کنه از اگر بله اگر نمیتونه مجابیش کنه خیلی بر نره با اینجور کسا